حال من پیشنایت میکنم شما سوال بکنید ساداتون شروع بکنید متشکرم از شما من میتونم قدر از اینکه ما داخل روژه به آخر و زمان صحبت بکنیم یه کمی روژه به زمان صحبت رفرمید خود لغت آخر و زمان به ما این رو نشون میده که گویی زمان آغاز و پایانی داره بله؟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 بله لازم عرفتی ما این فاصله جهان از خدا اینه. فاصله مخلوق از خالق ایو از اینه پس ما میخوایم ببینیم عمر این شی، چقدره یعنی بس میدونیم که آقا این شی چند ساله و به چه میزانی از خدای خودش دور افتاده یعنی چند مدتی خلق شده خلق شدن دور افتادن و پرتاق شدنه دور افتادگیست این هزیرته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 خب این خیلیه چه؟ من زمان هستم میانیشم طبیعی اگر محمد سروره هم گیره هست و انسان کامله و مظهر روح اداییست خب با در واقع بیتر میشه که وقتی وقت این فرمان زمان هستم میانیش یعنی من ظهور سرمدیت و جابدانگی پروردگارم من ظهور جمال روح خدا هستم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 خلق شدن، تعیّر پیدا کردن، ماده شدند. ماده داره داره داره یعنی تاریک در واقع جهان ماده. جهان سقل. این اینا هم رو خبر گفت کل عالم طبیعت و کائنات تاریک اسفارفین. خب این نزول. خب در قرآن کریم داریم که خداوند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 این مم. یه روز زن از خدا یه روزه ولی برای بشه پنجاه هزار سال به طول خواهد انجام ده نه هزار سال پنجه هزار سال بله مم. قیامت طویلترین روزه یعنی از صبح تا شام قیامت پنجه هزار سال طول میکشم بله. و از اون روز پنجاه هزار سال قیامت که آخر زمانه هزار و شارست سال تقریبا داره میدید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 انسان حیوان زماندار و و زمان فن. انسان تنها حیوان است که زمان رو درک و احساس میکنه چون زمان رو که احساس میکنه لذا تباهی، تخریب و مرگ و نیستی رو درک احساس میکنه و به همین دلیله که انسان تنها حیوان است که حراسانه انسان حیوان است، ترسو و حراسان چون زمان رو احساس میکنه لذا نابودی رو احساس و درک میکنه لذا موجودی ترسو، وحشت زده و تمام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 وقتی خواست خلق کنه، مزاری اومدن گفتن پروردگار رو این چه دیوانه خونخاری میخوایی این حسابش داده این وحشی ترین خونخار ترین وازادم ترین موجودی بده که شما خرق یردی حالا این خونخار رو که زمین رو به خاک و خون کشیده حالا میخوایی تازه به خلیفه خواستن جانشین خواستن هم جانشین هم بکنی برای همین بود که آده این نبودن سوچ و اون داستان که در قرآن میدونی پیش